مشیر ریحان و حسنی روی تخت سنگ کنار دره نشسته بودند که پیرزنها با کاسه آب تربت و جارو پیدا شدند. نه خانوم دعا میخواند و ننه فاطمه آب تربت دور ده می‌پاشید. مشیر ریحان گفت: پیداشون شد، پاشو بریم. حسنی گفت: کیا؟ مشیر ریحان گفت: پیرزن‌ها اومدن، پاشو بریم. هر دو بلند شدند. مشیر ریحان دست حسنی را گرفت و کشیدش توی دره. حسنی گفت کجا؟ اون پایین خیلی تاریکه مشیر ریحان گفت بیا بزار رد بشن اون وقت برمیگردیم خانه حسنی و مشیر ریحان توی تاریکی دره می که ما از پارگی ها پیدا شد پیر زنها دو سیاهی را دیدن که توی دره می رفتند. ننه خانوم گفت دیدیشان ننه فاطمه گفت آره دیدمشان ننه خانوم گفت کیا بودن ننه فاطمه گفت خدا میدونه ننه خانم گفت بیا بریم آب تربت همراه مونه طوری نمیشه ننه فاطمه گفت من که توی دره نمیرم ننه خانم گفت من هم نمیرم از اون بالا نگاه میکنیم و آب تربت توی دره میریزیم پیرزنها پاورچین آمدند کنار سنگ و کمین کردند بعد هر دو خم شدند توی دره حسنی و مشتی ریحان ته دره کنار هم نشسته بودند. مشتی ریحان دستش را گذاشته بود روی زانوی حسنی. هر دو بالا را نگاه می کردند که دوتا کله از لبه دره پیدا شد. حسنی گفت نه پایین. مشتی ریحان گفت نمیتونن. حسنی گفت اگه اومدن. مشتی گفت از این بر می در میریم. حسنی گفت پاشو بریم. مشدی ریحان گفت صبر کن رد بشن ننه خانوم از بالای دره داد زد کی هستین؟ حسنی و مشدی ریحان جواب ندادند ننه فاطمه گفت جواب نمیدن ننه خانوم داد زد انسی جنی هر کی هستی حرف بزن حسنی و مشدی ریحان باز هم جواب ندادند ننه فاطمه جارو را زد به آب تربت و توی دره تکان داد حسنی گفت این مادرمه مشتی ریحان گفت اون یکی هم زن مشتی سفره ساکت شدن ننه فاطمه هاشیه در راه میرفت و آب تربت میپاشید. ننه خانوم دوباره خم شد توی در رو بلند داد زد. هر کی هستی انسی جنی هر کی هستی قسمت میدم که از اینجا برو از بیل برو حسنی و مشتی ریحان جواب ندادند. پیرزنها برگشتند. ننه فاطمه گفت: "تون بریم خیلی کار داریم ننه و نن خانوم پیش خود گفت: "خوب شد که مشتی جعفر با اسلام میره خاتون آباد. مشی سفرم که الان خوابه. راستی نکنه مشتی ریحان پسر منم بکشه رو خودش." توی کوچه که میپیچیدند برگشتند و نگاه کردند. دو سیاهی از تاریکی در آمدند بیرون و دوباره نشستند روی تخت سنگ مشتی ریحان و حسنی که وارد خانه شدند مشتی جبار خود را توی لحاف پیچیده جلوی حیزم به خواب رفته بود مشتی ریحان جلو رفت و مشتی جبار را تکان داد مشتی جببار همانطور که تو خواب بود گفت چیه؟ مشتی ریحان گفت پاشو پسر ننه فاطمه آمده مشی جبار گفت: چه کار بکنم؟ مشتی ریحان گفت: نمیخواییم بریم پروست؟ مشی جبار بیدار شد و گفت: کوش. حسنی که دم در ایستاده بود گفت: من اینجا مش جبار. مشی جبار گفت: من میرم پروست تو هم میای؟ حسنی گفت: بریم پروست که چه کار بکنیم؟ مشی جبار گفت: پروست میرن که چه کار بکنن؟ بریم دزدی. حسنی گفت، یعنی میگی بریم دزدی؟ مشتی جبار گفت، آره یادت که سه تا گوسمند من و پروسییا دزدیده بودن؟ حسنی گفت، یادمه. مشتی جبار گفت، با هم میریم تلافیشو رو در بیاریم. حسنی گفت، تناب لازمه، میدونی که؟ مشتی جبار بلند شد، دوتا تناب آورد و یکی را داد به حسنی و یکی رو هم خودش برداشت. حسنی گفت: بریم. مشی جبار گفت: تناب رو دور کمرت. حسنی گفت: من همین جوری میبرم. مشی جبار به مشتی ریحان گفت: صبح نشده برمیگردیم. مشتی ریحان گفت: زودتر برگردین. حسنی و مشتی جبار آمدند بیرون. از کوچه رد شدند و رسیدند کنار استخر. مردها رفته بودند. چند نفر کنار استخر دور هم گپ میزدند. ماه از پارگی ابرها توی استخر میتابید. ماهیها آمده بودند و کف می‌خوردند. حسنی و مشتی جبار کنار باغ ارباب که رسیدند، پسر مشتی سفر با چند تا کیسه پیدا شد. مشتی جبار و حسنی ساکت از کنارش رد شدند. پسر مشتی سفر گفت: سفر به خیر این وقت شب کجا؟ مشی جبار گفت کار داریم. پسر مشی سفر خندید و گفت میدونم چه کار داریم مشی جبار گفت خوب میدونی که بدون. پسر مشی سفر گفت میخوام بگم که میرین دزدی. مشی جبار گفت تو چی نمیای؟ هیچ وقت. مشی جبار گفت بهتر که دیگه خفه بشی. پسر مشی سفر ترسید و خندید مشتی جببار گفت برو جار بزن برو به همه بگو که جبار و حسنی رفتن دزدی پسر مشی سفر دور که شد داد زد نترسین به هیچ نمیگم حسنی و مشتی جبار از توی ده آمدن بیرون مشتی جبار هم تناب را از کمرش باز کرد و انداخت به پشت حسنی هم تناب رو انداخت به پشت از توی بیراه راه افتادند مشتی جبار گفت اگه پسر مشتی سفر یه دفعه دیگه اینجوری حرف بزنه دندوناشو میشکنم حسنی گفت کاری باش نداشته باش اون همیشه دریوری میگه مشتی جبار گفت ما که نمیریم دزدی میریم تلافی گسفندامونو در بیاریم حسنی گفت اگه گوسفندم گیرمون نیومد مرغ میدوستیم مشتی جببار گفت حتما این کار رو از تپه اول که پایین آمدن سه پروسی را دیدند که گوسفند، پرواری را کشان کشان می طرف آبادیشان مشتی جببار گفت خدا و یکی از پروسی ها گفت راهتو بگیر و برو نن خانوم و ننه فاتمه در سنگی علمخانه خانه را حل دادند. نن خانوم فانوس را برد تو دالان کوتاه و تاریک را نگاه کرد. پشت سرش ننه فاتمه که کاسه آب تربت و جارو را به سینه می وارد شد. آرام آرام جلو می رفتند. فانوس دیوارهای دالان را روشن می کرد. رفهای کوچک و بزرگ دیوارها، پر بود از تک پاره های قرآن بنت دالان که رسیدند در کوچک و کوتاهی پیدا شد که همه جایش را نظر قربانی میخ کرده بودند نن خانوم شروع کرد به دعا و نن فاطمه جارو را زد به آب و پاشید روی در نن خانوم چفت در را باز کرد دخمه تاریکی پیدا شد هر دو پیر زن چند ثانیه ایستادند و تاریکی را تماشا کردند اول نن خانوم و پشت سرش نن فاطمه تو رفتند بوی پوسیدگی و نموری دخمه را پر کرده بود نن فاطمه گفت نن خانوم چند تا علم میبریم بیرون نن خانوم گفت دور تا دور استخر را علم میزنین نن فاطمه گفت دو نفری میتونیم ببریم بیرون؟ ننه خانم گفت البته که میتونیم ننه فاطمه کاسه و جارو را گذاشت زمین نن خانم فانوس را برد جلو دور تا دور اتاق را علم چیده بودند ننه فاطمه دستهایش را گذاشت روی سینهش و ننه خانم از جلوه صف علمها که میگذشت دعا میخواند و فوت میکرد ننه فاطمه گفت اینا رو که نمیشه دست زد، همشون پوسیدن و میریزن. ننه خانم گفت، کاری با اینا ندارم. از وسط دو پشت علم رد شدند و رسیدن به زریح کوچکی که کنار دیوار افتاده بود. هر دو کنار زریح خالی نشستند. ننه خانم گوشه روسریش را پاره کرد و در حالی که به زریح میبست گفت، یا فاطمه ی دخیلتم را اینو میبندم که بلا را از جان بیل دور کنی. ننه فاطمه زیر لب تکرار کرد. یا فاطمه زهرا دخیلتم. گوشه چادرش رو پاره کرد و بست به ذریح هر دو بلند شدند. ننه فاطمه گفت. علمها را میبریم. ننه خانم گفت. همین حالا میبریم. ننه فاطمه گفت. کدومها را میبریم. ننه خانم گفت. اونا که پشت شمایلن بعد فانوس را گذاشت زمین دو نفری رفتن به طرف شمایل بزرگی که به علم تکیه داده بودند ننفاتمه پرده شمایل را بوسید و گفت یا حضرت دخیلم و ننفاتمه گفت یا حضرت دخیلم بیل رو نجات بده پرده را که کنار زدند حضرت پیدا شد که با دو شمشیر سر ایستاده بود نن فاطمه و نن خانم شمایل را بلند کردند و بردن جلو زریح گذاشتند نور فانوس علمهای تازه را روشن کرد پیرزن به طرف علمها رفتند نن فاطمه گفت دخیل تمیا امام زمان نن خانم گفت اخفر لنا یا رب العالمین مشتی ریحان وسط مطبخ نشسته بود و مرغ را گذاشته بود توی آب داغ و پر میکند. روی ازمها فانوس روشنی گذاشته بودند پاپاخ آمده بود و نشسته بود آنور دربچه باز و با لب و آویزان به دست مشتی ریحان چشم دوخته بود مشتی سر حال بود و از شلوغی بیرون لذت میبرد. شکم مرغ را که پاره کرد گردن پاپاخ دراز شد توی مطبخ مشکی ریحان دست برد توی شکم و روده ها را کند و درآورد، نگاه کرد بلند شد همه را از بالا سر پاپاخ انداخت بیرون و پاپاخ پرید پایین مشکی ریحان مر را تکه تکه کرد و همه را ریخت توی بادیه مسی و آویزان کرد توی تنور کاسه ای شله خورد و بعد برای مشکی جببار جلوی هیزمها و برای حسنی پشت هیزمها جاپن کرد بعد آمد ایستاد زیر سوراخ پشت بام و آسمان را نگاه کرد که ما از پارگی ابرها بیرون آمده بود بعد لحاف خودش را برداشت و رفت پشت در که بخوابد تا هر وقت که حسنی و مشتی جبار آمدند بلند شود فانوس را هم آورد و گذاشت پشت در با سرمدان و آینه نشست جلو فانوس و به چشمهایش سرمه کشید. حسنی و مشتی جبار به پروس رسیدند. حسنی گفت اگه گیر بیافتیم چه کارمان میکنند؟ مشتی جببار گفت گیر نمیافتیم. حسنی گفت مگه نمیریم توی ده؟ مشتی جبار گفت نه توی ده نمیریم. این گوش و کنار منتظر میشینیم و وقتی که پروسیا از دزدی برمیگردن جلوشان میستیم و از چندشون در میاریم. حسنی گفت: میتونیم؟ م جبار گفت البته که میتونیم. هر دو رفتن نشستن زیر یکی از درختها. خانه های پروس خاموش بود و صدای جنبنده به گوش نمیرسید. حسنی گفت: همه خوابیدن مشی جبار گفت اینا خودشون رو به خواب میزنند حسنی گفت تو چیزی میبینی مشی جبار گفت اون گوشه رو نگاه کن هر دو نگاه کردند آتش چپقی از وسط تاریکی درختها پیدا بود حسنی گفت مواظب باش جبار گفت باشن حرف نزن بشین ببینیم چی پیش میاد حسنی گفت خب من دیگه حرف نمیزنم هر دو ساکت نشستند باد سردی میوزید از دور صدای ای شنیده میشد مشری جبار و حسنی نگاه کردند گاری کوچکی از خاتون آباد به طرف سید آباد میرفت حسنی گفت گاری را میبینی؟ مشی جبار گفت آره حسنی گفت چرا صاحب نداره؟ مشی جبار گفت: باشه، شب از این چیزا زیاد دیده میشه، اما شطور دیدی ندیدی؟ حسنی گفت: میدرسم. مشی جبار گفت: حرف نزن. گاری دور شد و صدای زنگوله برید. آتش شپخ دیگر از توی تاریکی پیدا نبود. حسنی گفت: مشی جبار؟ مشی جبار گفت: بازم چته؟ حسنی گفت: شاید امشب دوزی نرفته باشن مشی جبار گفت چه میدونم؟ حسنی گفت برگردیم بید مشی جبار گفت برای چی اومدیم؟ حسنی گفت پس بلندش شو بریم توی ده از زیر درخت آمدند بیرون تناپا را بستند به کمر و از بیراه زدند توی ده خانهها ها بغل هم فشرده و ساکت بودند از جلوی پنجره هاگی صدای نفس نفس آدمهایی را که راحت خوابیده بودند میشنیدند. مشی گفت: حالا چه کار بکنیم؟ حسنی گفت: بگردیم و چاه پیدا بکنیم. مشی جبر گفت: چاه؟ حسنی گفت: آره، پروسیا اموالدوزی را تو چاه قایم می‌کنه. مشی گفت: پس بگردیم چاه پیدا بکنیم. حسنی گفت چند تا چاه میخوای. مشری جبار گفت هرچه بیشتر بهتر. حسنی گفت خب دست منو بگیر بریم توی تاریکی. مشی جبار که چشمش خوب نمیدید دست حسنی را گرفت. حسنی او را میکشید و جلو برد حسنی که ایستاد مشری جبار هم ایستاد. مشری جبار گفت چی شد؟ حسنی گفت رسیدیم. مشی جبار گفت من که چیزی نمی‌بینم حسنی گفت بشین زمین مشی جبار توی تاریکی نشست و حسنی هم نشست چند ثانیه ساکت موندند حسنی گفت دستت را دراز کن مشی جبار دستش را دراز کرد حفره بزرگ و گودی زیر دستش بود که باد سردی از آن بالا می‌آمد مشی جبار گفت جا همینجاست حسنی گفت آره مشری جبار گفت آره دارم میبینم چاه بزرگی همه هست حسنی گفت از این بزرگتراشم همه هست مشتی جبار گفت حتما خیلی اومدی این طرفا حسنی خندید و جواب نداد هر دو خم شدند و توی چاه رو نگاه کردند حسنی گفت چیه؟ بوی چی میاد؟ مشی جبار گفت بوی گوسفند میاد بوی گوسفندام بوی گوسفندای خودم حسنی گفت آره بوی گوسفند میاد و بوی یه چیز دیگه هم میاد مشی جبار گفت خوب حالا چه کار بکنی؟ حسنی گفت باید یه نفرمون بره تو چا مشی جبار گفت خیلی خوب تو تناب و محکم نگه میداری و من میرم پایین حسنی گفت من از تاریکی میترسم. تو تناب نگهدار من برم پایین. این مچی گفت مگه توی چا تاریک نیست؟ حسنی گفت آخه اونجا پروسی پیدا نمیشه. شه مچی گفت خیلی خوب تناب رو از کمرش باز کرد و بست به کمر حسنی حسنی همانطور که نشسته بود پاهایش را راویزان کرد توی چاه انگشتانش را تکیه داد به دیواره چه خزید توی تاریکی مشری جبار تناب را آرام آرام رها کرد و سنی آرام آرام توی تاریکی فرو رفت مشری جبار دروبرش را نگاه کرد همه جا روشن بود و تنها او توی تاریکی قلیز نشسته بود و انتهای تناب را به دست داشت تناب رفته رفته سنگیم تر می شد مشتی جبار با خود گفت حسنی داره گوسفندا رو میونده به تناب خم شد و دوباره بو کشید بوی گوسفند و بوی بیل از توی چاه بلند بود خم شد توی چاه و آهسته گفت حسنی، حسنی حسنی از توی تاریکی تناب را تکان داد مشتی جبار تناب را کشید بالا حسنی که بالا آمد دو تا مرغ کشته با خود داشت. مشی جبار گفت: گوسفندا کوش. حسنی گفت: گوسفند تو جا نبود. مشی جبار گفت: همش این دوتا مرغ بود؟ حسنی گفت: آره، همین دوتا تا. آره، همین دوتا. تا. جبار گفت: خراب نشده باشن. حسنی گلوی بریده مرغ ها را بو کشید و گفت: مال امروزه. مشی جبار گفت بریم سر شاه دیگه حسنی به ماه که از پارگی ابر بیرون آمده بود نگاه کرد و گفت حالا باید برگردیم بیل مشی جبار گفت چرا حسنی گفت چیزی به نصف شب نمونده تا ما برسیم هوا روشن میشه مشی جبار گفت روزفندا رو کی میبریم حسنی گفت یه شب دیگه هر وقت که اومدیم تنابها را به کمر بستند مرغ‌های کشته را گذاشتند توی زنبیل حسنی زنبیل را برداشت و وقتی خواستند از سر چاه دور شوند صدای ناله گوسفندی از ته چاه شنیده شد